این نقش ماند از قلمت یادگار عمر به فصل دوم پادکست علف خوش من مهدیم و شما قسمت سیزدهم پادکست الف و قسمت اول فصل دوم این پادکست رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است. ما در فصل اول در ده ماه ده نمایشنامه رو برای شما روایت کردیم و حالا فصل دوممون از دی ماه نبدونو شروع میشه. این پادکست مثل فصل اول اولین روز هر ماه میلادی که 11 هم یا دوازدهم ماه خورشیدی میشه، به صورت مرتب ده ماه پشت سرهم هم منتشر خواهد شد در دو ماه گذشته اپیزود نداشتیم و حالا با لوگوی جدید فصل دوم پادکست رو شروع میکنیم بهترین حمایت شما از پادکست الف معرفی اون به دوستانتونه همچنین شما میتونید شبکه‌های اجتماعی پادکست رو دنبال کنید و همونجا پادکست رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید در این قسمت از پادکست الف نمایشنامه سوء تفاهم اثر آلبرت کامو رو براتون میخونم اما قبلش یه خورده باید خود آلبرت کامو رو بهتر بشناسیم کامو در سال 1913 در الجزایر متولد شد از پدری فرانسوی الاصل که به الجزایر مهاجرت کرده بود و با یه کارگر اسپانیایی ازدواج کرده بود که میشه مادر کامو خانواده کامو جزء طبقه کارگر بودند و نسبتا فقیر حساب میشدند، اما با این وجود کامو کودکی شادی داشت و ساعتها در کنار دریا و زیر آفتاب وقت می و بسیار از این کار لذت می برد عشق عظیمش به آفتاب و دریا که در این نمایش هم که براتون خواهم خون مشخصه تا آخر عمر باهاش موند و دوری از اونا وقتی الجزایر رو ترک کرد و به فرانسه و مخصوصا پاریس رفت همیشه آزارش میداد. به خاطر استعدادی که داشت معلمش موفق شد براش یه بورس تحصیلی در دبیرستان بگیره و کامو به دبیرستان و بعد از اون به دانشگاه رفت و لیسانس فلسفه گرفت. در سال 1935 وارد حزب کمونیست شد اما همیشه بهش تردید و انتقاد داشت. در واقع کامو آدم ایدولوژی و گروه های مختلف سیاسی نبود. مثلا ویلدورانت در کامو میگه کامو به معنی واقعی کلمه انسانگرا بود و انسانتر از اون بود که ایدیولوژی رو بپذیره که بهش مجوز کشتن یه انسان دیگر رو میده. کامو تو سال 1938 به روزامنگاری مشغول شد و ایدهی نوشتاش از همون زمان تو ذهنش شکل گرفت. قصداش تو سه حلقه پوچی، تقیان و عشق و شفقت دیدگاهاش رو بیان کنه نمایشنامه سوء تفاهم در کنار کالیگولار، رمان معروفش بیگانه و مقاله افسانه سیزیف حلقه پوچی را می‌سازند. حلقه تقیان شامل مقاله انسان تاقی، رمان تاون و نمایشنامه عادلها و شهروندان میشه و حلقه سوم یعنی عشق و شفقت با مرگ زود هنگام کامو بر اثر صحنه رانندگی ناتمام میمونه. متاسفانه از جنبه فلسفی اسمش رو در کنار سارت به عنوان متفکر اگزیستانسیال میارن که خودش همیشه اینو رد کرده ابزردیسم رو متعلق به کامو میدونن ولی بازم کامو خودش رو هنرمند میدونست و فلسفه رو بخش جانبی زندگیش میدونست برای همین هیچ وقت به دنبال ساختن یک مکتب یا یک سیستم فلسفی نرفت نمایشنامه این تفاهم که اول همراه نمایشنامه کالیگولا در یک کتاب به چاپ رسیدن و بعدها از هم جدا شدن یه موقعیت پوچ و سراسر نامیدی رو به تصویر میکشه و از زبان شخصیت ها دیدگاه پوچ کامو رو به جهان نشون میده. برای همین پر از دیالوک های امیقه و نیاز به یه کمی دقت در دنبال کردن داستان داره کامو این نمایش رو در 28 سالگیش نوشته و اون موقع دقیقا زمانی بوده که در جنگ جهانی دوم فرانسه به اشقال نازی ها در اومده بود نمایشنامه برای اولین بار سال 1944 روی صحنه رفته خیلیها ها متقدن تفاهم رو نباید به چشم یک داستان و یا یک روایت ساده دید و باید در این نمایشنامه دنبال چیز امیختری بود کامو در رمان بیگانش به این نمایشنامه یه اشاره هوشمندانه داشته کا آخر اپیزود درباره اون هم صحبت خواهم کرد قبل از این که بریم سراغ خود نمایشنامه، اگر علاقه من شدید کامو رو بیشتر بشناسید میتونید قسمت های 25 و 26 پادکست اپیتومی بوکس که به زندگی کامو پرداختر رو گوش کنید. متن این قسمت پادکست رو مهدیس سفری نوشته و همچنین منبع ما برای این متن ترجمه خشایار دیهیمی از نشر ماهی و همینطور متن انگلیسی نمایش نامه بوده. ممنونم از مهدیس و از نشر ماهی.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 یا به هر دلیل دیگه ای دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود پادکست سالف خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم آموزشی موسیقی توسط اساتید و با تجربه است تو خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگدرام و سازدهنی پیدا میشه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 لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی صحنه نمایش سالن یک مهمونخونه تمیز و روشن در شهر کوچیکی در چک اسلوواکی و مادر خانم پیری حدوداً 60 ساله با مارتا دختر 30 سالش صحبت میکنه مارتا میپرسه تنها برمیگرده و مادر میگه نمیدونه در مورد مهمون جدید مسافرخونهشون حرف میزنن که در واقع تنها مهمونه مسافرخونه شونه. مارتا میپرسه پول داره؟ مادر میگه دلواپس پول کرایه که نبود. مارتا سر میده. مهم اینه که تنها باشه. اگه هم پولدار باشه که دیگه چه بهتر. مادر با کسالت تکرار میکنه تنها و پولدار. آره. باید دوباره دست به کار بشیم. مارتا با تحکم میگه بله، دوباره دست به کار میشیم ولی پاداش این رنج و زحمتمون رو هم میگیریم. مادر، عجیب شدی؟ یه چند وقتی هست که متوجه شدم. مادر آه میکشه. خستم. همین، هیچ چیز دیگه ای نیست. دلم میخواد استراحت کنم. مارتا، پیشنهاد میده کارهایی که به عهده مادره رو انجام بده تا مادرش وقت بیشتری برای استراحت داشته باشه. اما مادر میگه منظورشون استراحت نبوده و میگه فقط خواب و خیال یه پیر زنه. دلم آرامش میخواد. یکم بیخیالی، آسودگی، احمقانست مارتا ولی بعضی وقتا دلم برای حال و هوای مذهبی تنی میشه. مارتا میگه مادرش اونقدر هم پیر نیست که دلش بخواد بره تو همچین حال و هوایی مادر لبخند قمگینی میزنه و میگه دارم شوخی میکنم ولی به هر حال شاید بد نباشه آدم آخرای زندگیش کمی بی خیال بشه آدم نمیتونه همیشه اینقدر خشک و جدی باشه که تو هستی مارتا تو سن و سال تو هم خوب نیست دخترای همسن تو همش به فکر ورجه ووجه و خوشگذرونیه و مارتا میگه خوشگذرونی های اونا در برابر خوشی های ما هیچه. خودت هم میدونی؟ مادر جواب نمیده. مارتا صداش رو میاره پایین و آهسته میگه گمونم تازگی ها میترسی بعضی حرفها رو به زبون بیاری. انگار کلمه ها زبونت رو میسوزونن. مادر میگه تا وقتی پاپس نمیکشم چه فرقی به حال من و تو میکنه. فقط میخواستم بگم دلم میخواد بعضی وقتا لبخند رو, رو روی لبای تو هم ببینم. مارتا اطمینان میده که اونم لبخند میزنه اما مادر میگه تا حالا ندیده مارتا بخنده مارتا میگه آخه مادر وقتی یه عالم پول جمع کردیم و تونستیم این سرزمین بی فوق رو ترک کنیم وقتی بالاخره تونستیم روبروی دریا باشیم که من این همه خوابش رو میبینم اون وقت لبخند منو هم میبینی ولی ما برای اینکه کنار دریا زندگی کنیم کلی پول لازم داریم برای همینه که نباید از کلمه ها بترسیم برای همینه که باید حواسمون به این مرد باشه شاید آزادی من با اون شروع بشه خیلی باهات حرف زد وقتی میخواست اتاق بگیره چطوری به نظر اومد مادر میگه نمیدونم من چشام خوب نمیبینه تجربه هم میگه بهتر نگاهشون نکنم کشتن چیزی یا کسی که نمیشناسیش خیلی آسونتره. حالا خوشحال باش میبینی که دیگه از کلمات نمیترسم. مارتا با قاطعیت سرتکن میده. آره اینطوری بهتره. جنایت جنایته. آدم باید رو تصمیمش محکم وایسه به نظرم تو هم از وقتی داشتی باهاش صحبت میکردی میدونستی. منظورش این می‌دونسته میدونسته که قراره بکشنش. اما مادر میگه اون موقع به این قضیه فکر نکرده و از سر عادت جواب مسافر رو داده. مارتا از کلمه عادت تعجب میکنه چون این فرصت ها برای کشتن یه مسافر تنها و پولدار کم پیش میاد اما مادر میگه ولی عادت از همون جنایت دوم شروع میشه با اولی هیچی شروع نمیشه اولی فقط تموم میشه بعدش چون فرصت کم پیش میاد خاطرشونه که عادت رو شکل میده آره من از سر عادت جوابش رو دادم عادت بهم به گفت بهش نگاه نکنم و مطمئنم کرد که اون شکل قربانیه مارتا میگه مادر ولی مجبوریم بکشیمش مادر آه میکشه راستش من خستم دلم میخواد این مرد آخریش باشه برای من مردن کنار دریا یا تو مزرعه خیلی فرقی نمیکنه. ولی دوست دارم با هم از اینجا بریم مارتا میگه میریم میریم و اون روز خیلی با شکوه مادر محکم باش، تازه خودت میدونی که اصلا کشتنی در کار نیست. چایش رو میخوره، خوابش میبره، ما هم وقتی هنوز کاملا زنده است میبریم و میندازیمش تو رودخونه. خودت به هم گفتی اونایی که مالمان کمتر از همه عذاب میکشن. محکم باش، با هم از اینجا میریم و تو هم به آرامشی که میخوای میرسی. مادر هم تعیید میکنه. آره بعضی وقتا این فکر آروم میکنه که اونایی که مال ما هستن کمتر از بقیه عذاب کشیدن. سخت میشه اصلا اسمش رو جنایت گذاشت. فقط یه دخالت کوچیک یه تلنگر زندگی خیلی بیرحتر از ما شاید برای همینه که نمیتونم احساس گناه کنم. پیرمرد خدمتکار وارد میشه ولی بیحرف میره پشت بار میشینه. مارتا از مادر میپرسه که بهتر کدوم اتاق رو بدن به مسافر و مادر هم میگه فرقی نمیکنه ولی بهتر از اتاقای طبقه اول باشه چون دفعه آخر طبقه دوم خیلی دردسر و زحمت داشته انگار بعد از اومدن پیرمرده مارتا و مادرش سعی میکنن یه مقداری مستقیم درباره کشتن حرف نزنن هرچند هنوز هم حرفاشون درباره کشتن مسافره مارتا برای اولین بار از ابتدای نمایشنامه میشینه و میگه مادر، راسته که میگن اونجا شنها اونقدر داغن که پای آدم تاول میزنه توی کتاب خوندم که آفتاب حتی روح آدم رو هم میسوزونه و باعث میشه تن آدم بدرخشه درخشه اما توش خالی باشه برای همین همش خوابش رو میبینم خسته شدم از اینکه که همش روحم هم رو با خودم میکشم دلم میخواد جایی رو پیدا کنم که آفتابش همه سوالها رو میکشه نه، اینجا خونه ای من نیست اینجا اونجا نیست. مادر میگه اگه همه چیز خوب پیش بره منم باهات میام ولی این هستو ندارم که به خونم میرم. آدم به یه سن و سالی که میرسه دیگه خونه ای نداره که توش راحت باشه. همین هم از سر آدم زیاده که بتونه خودش رو به همین خونه ی آجوری مسخره و پرخاطر عادت بده و بعضی وقتا خوابش ببره. همین هم نعمتیه. البته اگه بتونم به خوابم همه چی رو فراموش کنم. بلند میشه و به طرف در میره و میگه همه چی رو حاضر کن اگه واقعا به زحمتش می‌ارزه مارتا بیرون رفتن مادرش رو با چشم دنبال میکنه و بعد خودش از در دیگه‌ای خارج میشه پیرمرد خدمتکار به طرف پنجره میره و از اونجا ژان و ماریا رو می‌بینه. باید یادمون باشه که ماریا همسر ژانه و مارتا دختر صاحب مهمونخونه است همون که الان داشت با مادرش صحبت می‌کرد. چون اسمشون شبیهه این تذکر رو میدم که قاطیشون نکنیم. ژان داخل میشه. دورو بر اتاق رو نگاه میکنه و چشمش به پیرمرد خدمتکار میفته. ازش میپرسه کسی اینجا نیست؟ پیرمرد چند لحظه به ژان خیره میشه و بعد بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون میره. ماریا داخل میاد. ژان با کم عصبانیت میگه تعقیبم میکردی؟ ماریا میگه معذرت میخوام دست خودم نبود شاید همین الان برم ولی اجازه بده ببینم تو رو کجا میذارم و میرم ژان آهسته میگه ممکنه یکی بیاد و من دیگه نتونم اون کاری که میخوام رو انجام بدم ماریا اطراف رو نگاه میکنه و میپرسه پس اینجاست ژان سر تکون میده آره همینجاست 20 سال پیش از همین در رفتم بیرون مادرم نیومد برای خداحافظی بغلم کنه اون ها فکر میکردم اهمیتی نداره ماریا با حرارت میگه جان من باورم نمیشه مادرت تو رو نشناخته باشه یه مادر همیشه پسرش رو میشناسه جان میگه از اون موقع بیست سال گذشته و مادرش هم چشماش ضعیف شده تازه حتی اونم به سختی مادرش رو شناخته ماریا با بیتابی میگه آره میدونم اومدی تو و گفتی صبح بخیر. بعد هم نشستی اینجا و هیچی به چشمت آشنا نبود. جان یکم سردرگمه و توی فکر رفته. میگه نمیدونم نمیدونم هیچی شبیه اونی که توی ذهنمه نبود. سلام جواب سلام و بعدش هم سکوت. بعدش آبجو سفارش دادم و برام آوردن. نگاه هم میکردن. ولی انگار منو نمیدیدن. همه چیز خیلی سختتر از اون چیزی بود که فکر میکردم یه یادآوری بکنم که دلیل اینکه مادر جان اون رو نشناخته اگر یادتون باشه اینه که بهش زل نزده بود و توی چشماش نگاه نکرده بود چون احتمالا مثل قربانی میخواسته باهاش رفتار کنه ماریا میگه خودت میدونی که اصلا هم سخت نبود کافی بود حرف بزنی جور مواقع میگن سلام من برگشتم و بعد همه چیز طبیعی میشه. ژان میگه: آره، ولی خیلی چیزا از ذهنم گذشت. میدونی، یه جورایی انتظار داشتم ازم استقبال کنن، مثل استقبال از پسر مصرف. ولی اونا به من نوشیدنی دادن و پولش رو هم گرفتن. خیلی جا خوردم. اصلا نمیتونستم حرف بزنم. انگار کلمات مناسب رو پیدا نمیکردم. تازه عجله هم ندارم. من اومدم با جیب پر از پول و میخوام خوشحال و خوشبختشون کنم. وقتی خبر مرگ پدرم رو شنیدم میدونستم در قبال این دو نفر مسئولم. من دارم کار درستو میکنم. اما گمونم برگشتم به خونه هم به این آسونیا که میگن نیست. وقت میبره از یه قریب دوباره یه فرزند بسازی. پسر مصرف که جان در پاراگراف قبلی اسمش را آورد اشاره داره به یه داستان از انجیل لوقا که توش یه پسری از پدرش سهم اموالش رو میخواد. پدر؟ اموالش رو نصف میکنه و نصفش رو میده به این پسره. نصف دیگهش رو هم میذاره برای پسر بزرگترش. پسر کچیکتر پولها رو میداره و میره. اما خیلی زود پولهاش رو صرف عیاشی و بی میکنه و به وضع بدی میافته. پس پیش پدرش برمیگرده و میگه من گناه کردم و لیاقت این که دوباره پسر شما باشم رو ندارم. اگه میشه منو به عنوان کارگر بپذیرید اما پدر به پسرش رحم میکنه و دستور میده گوسفندی ذبح کنن لباس ابریشمی تنه پسر کنن و به جشن و شادی بپردازن برادر بزرگتر وقتی از مزرعه به خونه میاد و از داستان باخبر میشه به پدر اعتراض میکنه و میگه من سالها بهت خدمت کردم و تو چیزی به من ندادی اما برادرم پولهای تو رو تلف کرد و حالا که اومده براش جشن گرفتی. پدر میگه تو درست میگی و همیشه با من بودی. هر چیزی که مال منه مال تو هم هست. اما حالا باید خوشحال باشیم چون برادر تو مرده بود و زنده شد. گم شده بود و حالا پیدا شد. جان هم به همین خاطر میگه انتظار همچین برخورد و استقبالی رو داشته. مثل پسر مصرف. برگردیم به نمایش نامه ماریا به ژان میگه اصلا چرا خبر ندادی داری میای؟ آدم اگه میخواد بشناسنش اسمش رو میگه خیلی واضحه چطور میشه انتظار داشت باهات مثل غریبه ها رفتار نکنن وقتی خودتو غریبه جا زدی؟ این کار عاقبت خوبی نداره خطرناکه کار دست خودت میدی اما جان بیخیال میگه ول کن ماریا اونقدر هم جدی نیست تازه این با نقشه های من بیشتر جوره میخوام از فرصت استفاده کنم و یک کمی از بیرون نگاهشون کنم تا راه این که خودم و بهشون بشناسونم هم پیدا کنم ماریا با اصرار میگه یه راه بیشتر نداره کافیه بگی منم خود خودمم بعد دلت کلمات درست رو پیدا میکنه میگی من پسرتونم اینم زنمه من و اون توی کشور دیگه زندگی میکنیم که خیلی دوستش داریم کنار دریاست پر از آفتابه ولی به قدر کافی خوشبخت نبودیم و حالا به شما احتیاج داریم. ژان با دلخوری میگه بی نکن ماریا من بهشون احتیاج ندارم ولی اونا به من احتیاج دارن. تازه آدم هیچ وقت فقط به خاطر خودش زندگی نمیکنه. ماریا روش رو بر شاید حق با تو باشه معذرت میخوام، ولی از روزی که اومدیم اینجا بدگمون شدم تو خودت هم از وقتی اینجا اومدیم ندیدم بخندی چرا منو برداشتی آوردی اینجا جان بیا از اینجا بریم اینجا نمیتونیم خوشحال باشیم و به خوشبختی برسیم جان میگه اینجا دنبال خوشبختی نیومدیم این چیزها رو خودمون داریم ولی خوشبختی همه چیز نیست و آدما وظایفی دارن که باید انجام بدن وظیفه ی جان هم اینه که مادرش رو دوباره پیدا کنه بعد هم از ماریا میخواد که بره اما ماریا میگه میخوام بمونم همینجا کنارت میمونم و یک کلمه هم حرف نمیزنم تا وقتی خودشون بفهمن هستی. اما جان معتقده با وجود ماریا حتما لو میره ماریا نزدیک جان میاد و بهش خیره میشه جان ما پنج سال ازدواج کردیم و امشب اولین شبیه که کنار هم نیستی من همیشه همه چیز تو رو دوست داشتم حتی چیزایی که ازشون سردر نمیارم ته دلم میدونم که تو را همین جوری که هستی میخوام هیچ وقتم از اون زنای قرقرو نبودم اما حالا امروز امروز میترسم از اون جایی که داری منو میفرستی از اون تخت خالی میترسم میترسم تنهام بذاری جان میگه تو نباید به عشق من شک کنی ماریا میگه شک نمی ولی عشق تو یه چیزه و خواب و خیالات یا به قول خودت وظایفت یه چیز دیگه است خیلی وقتا از من فرار میکنی و احتیاج به استراحت داری ولی برای من استراحتی در کار نیست من هیچ وقت از تو خسته نشدم و فکر امشب بعد از این جمله ماریا خودش رو توی بقل جان میندازه و به گریه میافته. میگه طاقت امشب رو ندارم. ژان بغلش میکنه و نوازشش میکنه. این حرفا خیلی بچگونه است. ماریا ناراحته و میگه میدونم خیلی بچگونه است ولی ما قبل از اینکه بیایم اینجا خیلی خوشحال و خوشبخت بودیم. تقصیر من نیست که شبو اینجا منو به وحشت میندازه. نمیخوام بدون تو اینجا بمونم. ژان میگه زیاد تنهات نمیذارم. باید درکم کنی ماریا. من یه قولی دادم که باید پاش پاشوایسم. قولی که به خودم دادم. وقتی فهمیدم مادرم به من احتیاج داره. ماریا میگه ولی تو یه قول دیگه هم دادی. قول دادی با من زندگی کنی. ژان به ماریا اطمینان میده که این دو تا قول هیچ منافاتی با هم ندارن و ژان هر دو قول رو میتونه نگه داره. میگه این یه بازی یا هوس نیست. من فقط یه شب وقت میخوام که بتونم خودم رو جمع جور کنم که بتونم این دوتا زنی که دوستشون دارم رو بهتر بشناسم و ببینم چطور میتونم خوشحالشون کنم ماریا سرش رو تکون میده و میگه ولی جدایی فقط برای کسایی معنی داره که واقعا عاشق همه جان دلخور میشه و میگه این حرف خیلی بیمعنی است و اون واقعا عاشق ماریا است اما ماریا میگه نه مردا هیچ وقت چطور باید چطور بود. اونا فقط با خواب و خیالاشون خوشن با رفتن دنبال جاهای تازه، خونه های تازه، وطن تازه ولی ما زنها میدونیم عشق صبر و انتظار شناسه، عشق همینه، یه جای مشترک، دستی که توی دستت باشه. ترس از جدایی و تنها موندن. وقتی عاشق پاشی دیگه جایی برای خواب و خیال نمیمونه جان میگه آخه چرا به همچین چیزایی فکر میکنی؟ من فقط یه فرصت میخواستم که مادرم رو دوباره ببینم. تو هم باید خواب و خیالایی منو همینطوری که هستن قبول کنی چون من بدون خواب و خیالام بدون وظایفم هیچی نیستم اگه اینا رو نداشتم تو هم اینقدر دوستم نداشتی ماریا خیلی تند از جان رو میگردونه و میگه تو همیشه خیلی خوب منو قانع میکنی ولی من دیگه نمیخوام به حرفات گوش کنم این لحن الانت رو دیگه خیلی خوب میشناسم وقتی با این لحن حرف میزنی دیگه گوشام رو میگیرم و گوش نمیدم. این لحن لحن تنهایی توه مال دنیای شخصیته نه مال عشقت بعد با ناراحتی تمام و در حالی که اصلاً قانع نشده تسلیم میشه باشه خواب و خیالاتت رو ببین تا وقتی مطمئن باشم دوستم داری مهم نیست من صبر می‌کنم این ابرهایی که الان دورت رو گرفتن کنار برن و دوباره مال من بشی عشق مردا مثل زخمه مثل یه درده دست خودشون نیست نمیتونن کسی رو که دوست دارن ول نکنن و تنهاش نذارن جان به ماریا نزدیک میشه صورتش رو توی دستاش میگیره و لبخند دلگرم کننده ای میزنه حق با تو ماریا ولی نگام کن اصلا به هم میاد احساس خطر بکنم تو فقط داری یه شب منو میسپاری دست مادر و خواهرم. اینکه دیگه اینقدر وحشت نداره ماریا که هنوز دلخور و ناراضیه از جان فاصله میگیره و میگه پس خداحافظ امیدوارم عشق من ازت محافظت کنه. دوباره به جان نگاه میکنه چند لحظه میسته و در حالی که کاملا مشخصه اصلا دلش به نیست میره ژان که به فکر فرو رفته میشینه و بعد از چند لحظه مارتا داخل میاد جان میگه عصر به خیر اومدم اتاقم رو تحویل بگیرم مارتا سر تکون میده و میگه اتاق رو دارن آماده میکنن و اینکه باید اسم و مشخصاتش رو توی دفتر بنویسه. بعد هم میره پشت پیشخان تا دفترش رو برداره. ژان سر حرف رو باز میکنه. خدمتکار عجیبی داری؟ مارتا که سرش توی دفتره با بیتوجهی میگه خیلی با دقت و وصفاسی کاریش که بهش میگن رو انجام میده. اولین باره میشنوم کسی ازش شکایت میکنه. جان میگه اصلا منظور شکایت نبوده. فقط با بقیه آدم ها فرق داره. میپرسه کرولاله؟ یا نه حرف میزنه نه به نظر میاد حرفای آدم ها رو میشنوه. مارتا میگه خیلی کم حرف میزنه فقط در مواقع ضروری. گوشاش هم سنگینه. ببخشید میشه اسم و فامیلتون رو بگید؟ کاملا مشخصه که مارتا علاقهی به اختلاط با ژان نداره. ژان خودش رو کارل هاشک معرفی میکنه و به بقیه سوالهای مارتا در مورد مشخصاتش جواب میده. اینکه سی و هشت سالشه، متولده همین کشوری که الان توش هستن و نمایش توش میگذره و شغلی نداره و مارتا هم میگه آدم برای اینکه شغلی نداشته باشه یا باید خیلی پولدار باشه یا خیلی فقیر جان با لبخند میگه فقیر نیست، لحن مارتا یه کمی عوض و علاقه میشه از جان میپرسه کجا زندگی میکنه؟ جان هم میگه آفریقا، اونور اوگیانوس این حرف ژان باعث میشه مارتا چند لحظه به فکر و خیال فرو بره بعد دوباره به خودش میاد و میپرسه میخاید اینجا بمونید ژان میگه نمیدونم بستیگی به خیلی چیزا داره مارتا هیچ توجهی به حرفای دو پهلوی ژان نشون نمیده و اصلا تلاش نمیکنه باهاش بیشتر معاشرت کنه میپرسه کارت شناسایی دارید پاسپورت یا شناسنامه ژان یه لحظه تعلل میکنه اما بعد پاسپورتش رو در میاره و به مارتا میده. لحظه لحظه هیجان انگیزیه چون کافی مارتا اسم واقعی ژان رو ببینه تا بشناستش. اما خدمتکار میاد توی اتاق و حواس مارتا رو پرت میکنه. اینجای این نمایشنامه رو خوب یادتون نگه دارید. مارتا میگه من که صدات نکرده بودم. خدمتکارم اینو میشنوه و میره. اما مارتا که گیج و آشفته شده بدون اینکه پاسپورت رو بخونه اونو به جان برمیگردونه. بی هوا میپرسه وقتی میرید اونجا آفریقا کنار دریا زندگی میکنید جان تعیید میکنه مارتا بلند میشه و انگار میخواد بره اما بعد دوباره برمیگرده و دوباره دفتر رو باز میکنه یادم رفته بود شما خانواده دارید؟ جان میگه یه وقتی داشتم ولی خیلی وقته که ترکشون کردم مارتا میگه نه منظورم اینه که الان در حال حاضر متحل هستید ژان با حیرت میگه هیچ وقت حالا تو مسافر خونه ای ازش این سوالا رو نپرسیده بودم ولی بعد میگه که ازدواج کرده و میگه مگه شما حلقه ازدواج منو ندیدید مارتا میگه نه توجه نکرده بود و از جان میخواد آدرس همسرش رو هم بگه اما ژان، اینجا دروغ میگه و میگه اون توی خونه مونده توی آفریقا. مارتا فقط میگه هان و دفتر رو میبنده. صرفا از سر وظیفه میپرسه که جان نوشیدنی میخواد یا نه که جان رد میکنه و میگه اگر مزاحم نیست ترجیح میده همونجا منتظر بمونه. مارتا در حالی که گوشه و کنار اتاق رو مرتب میکنه میگه نه مزاحم نیستید اما امیدوارم نخایید برای من قصه بگید و سفره دل دلتون باز بشه. من حوصله شنیدن درد و دل آدم‌ها رو ندارم. مردم اینجا خیلی وقت اینو فهمیدن. شما خیلی زود متوجه میشید که مسافرخونه آرومی رو انتخاب کردید و تقریبا هیچ این طرفا نمیاد. ژان میگه خوبین این که برای کاسبی شما خوب نیست. مارتا هم تایید میکنه. نه برای کاسبیمون خوب نیست ولی عوضش آرامش داریم. تازه. یه مشتری خوب بهتر از یه مشتری پر سر و ژان میگه ولی اینطوری یکم دلگیر نیست؟ احساس تنهایی نمی کنید. مارتا خیلی سریع میچرخه تا با ژان رو به رو بشه. به نظر میاد وقتی بحث به احساسات درونیش می کشه، خیلی زود جپه میگیره. میگه گوش کنید، فکر کنم باید یه چیزی رو خیلی واضح به شما یادآوری کنم. از وقتی پاتون رو میذاری تو این مسافرخونه، یه مشتری هستید و حق و حقوق حق یه مشتری رو دارید. ما حقوقتون رو رعایت میکنیم و خدمات لازم رو بهتون میدیم ولی لطفا نگران تنهایی ما نباشید. میتونید هر خدمتی که حقه مشتری از ما بخواید ولی نه بیشتر. ژان خیلی زود میگه معذرت میخوام، قصد نداشتم ناراحتتون کنم و فقط از ذهنم گذشت که خیلی هم با هم ما غریبه نیست. ژان مدام داره آشنایی میده، مدام داره سعی میکنه نشونه بده اما به نظر نمیاد خوهرش به بگرفتن این سرنخها داشته باشه مارتا با همون لحنه تند میگه مثل اینکه لازم لازمه تکرار کنم مسئله اصلا ناراحت کردن یا نکردن من نیست به نظرم جوری رفتار میکنید که مناسب شما نیست و لازم اینو بهتون بگم فکر نمیکنید به نفع هر دوی ماسک که فاصلمون رو حفظ کنیم اگه شما نخواید حد و حدود مشتری رو رعایت کنین من ناچارم عذرتون رو بخوام ولی اگه متوجه باشید که دو تا زنی که به شما اتاق کرایه دادن وظیفه ندارن شما رو به حلقه خانوادهشون هم راه بدن اون وقت مشکلی پیش نمیاد جان کیکم سر سرخورده شده میگه کاملا روشنه متاسفم طوری حرف زدم که شما فکر کردید من حد و حدودم رو نمیشناسم و شک و شبهه در مورد رابطه‌ی خودم با شما دارم فکر کنم دیگه حرفی برای گفتن ندارم حداقل فعلا مارتا این بار با کمی مهربونی میگه جان هنوزم میتونه حرف بزنه البته به زبون مشتریها و بعد توضیح میده اکثر مشتریای ما از همه چی با هم حرف میزنن از سفرهاشون، سیاست و خیلی چیزهای دیگه ولی راجع به ما حرف نمیزنن ما هم انتظاری غیر از این نداریم اتفاقا یکی از خدمات ما همین گوش دادنه. ولی دیگه وظیفه مهمون خونه خوندار نیست که به سوالت مشتریان در مورد زندگی خصوصیش هم جواب بده حالا مادرم گاهی جواب میده ها چون براش مهم نیست اما برای من مهمه امیدوارم متوجه شده باشین تازه شما میتونید از خودتون حرف بزنین و متوجه بشید چقدر لذت بخش آدم کسی رو داشته باشه که به حرفاش راجع به خودش گوش بده اما جان که دیگه عقب کشیده میگه متاسفانه من بلد نیستم خوب راجع به خودم حرف بزنم. به نظرم فایده ای هم نداره. اگه مدت کوتاهی پیشتون بمونم شما نمیتونید منو بشناسید. و اگرم طولانی بمونم خودتون فرصت پیدا میکنید که منو بشناسید. حتی بدون اینکه حرف بزنم. مارتا میگه امیدوار جان ناراحت نشده باشه و جان هم میگه دلیلی برای منظررت خواهی وجود نداره و حق با مارتاست همین موقع مادر وارد میشه و بعد از سلام و عصر بخیر. به جان خبر میده که اتاقش آماده است. جان هم تشکر میکنه و بعد مادر میشینه و دفتری که مارتا توش مشخصات جان رو وارد کرده، بر داره تا دوباره چک کنه. خطاب به جان میگه آقا دخترم یادش رفته به شما برای مالجه اومدید یا برای کار یا برای گردش. جان یه خورده فکر میکنه بعد میگه گمونم برای گردش اومدم میخواستم جایی که قبلا دیدم و خاطرات خوشی ازشون داشتم رو زنده کنم مارتا میپرسه شما قبلا اینجا زندگی میکردین؟ ژان میگه نه ولی خیلی وقت بیشا گذرم به اینجا افتاده بود فراموشش نکرده بودم اینجا رو خیلی دوست دارم انگار برگشتم خونه‌ی خودم مادر میگه فکر میکنه اینجا حسلهی جان سر بره اما ژان میگه من آدم احساساتی هستم خیلی زود با ها و آدمها اخت میشم فقط اگر فرصتش رو بهم هم بدن به نظر میاد با این بخش آخر جمله جان جان داره به مارتا تنه میزنه و مارتا هم متوجه و عصبانی میشه با بیتابی میگه اینجا اصلا جایی برای احساساتی شدن وجود نداره آقا جان حرف مارتا رو نادیده میگیره و متوجه میشه که نزدیک شدن به خانوادش از راه مارتا امکان نداره پس سعی میکنه مادرش رو امتحان کنه میگه به نظر خیلی دلزده میاید خیلی وقت توی مسافر خونه هستید مادر جواب میده اوه خیلی ساله اونقدر گذشته که دیگه یادم نمیاد از کی شروع شده و اون وقتا شکلی بودم مارتا خطاب به مادرش میگه لازم نیست این چیزها رو تعریف کنی. جان با عجله میگه اشکالی نداره. اشکالی نداره. من احساساتتون رو خوب درک میکنم خانوم. مثل آدم هایی هستیم که بعد از یک عمر کار کردن دیگه به آخر خط رسیدن. شاید اگر کسی کمکتون میکرد همه چی عوض میشد. همه زنا به پشتیبانی و کمک یه مرد نیاز دارن. مادر میگه اوه اون وقتا کمک داشتم ولی کارم خیلی سنگین بود. من و شوهرم از پس این همه کار بر ب حتی فرصت نداشتیم به هم فکر کنیم. فکر کنم قبل از اینکه که فوت کنه فراموشش کرده بودم. ژان با همدردی میگه درک میکنم. ولی شاید اگر پسری داشتید که کمکتون کنه اون وقت فراموش نمیکردید. مارتا اصلا از روند این گفتگو خوشحال نیست. سعی میکنه مادرش رو متوقف کنه و میگه خیلی کار داره. اما مادر که انگار با به درد و دلش پیش جان باز شده توجه نمیکنه و به جان میگه من دیگه پیر شدم خیلی پیر. پیر زنا حتی عشق پسرشون رو هم یادشون میره. قلبم مثل اعضای دیگه بدن فرسوده میشه. ژان میگه متوجم اما پسرتون هیچ وقت شما رو فراموش نخواهد کرد. مارتا دیگه میره بین دو نفر میسته و به بحث خاتمه میده با لحنی کاملا جدی و خشک میگه پسر هم اگر قرار باشه بیاد اینجا همون طوری ازش استقبال میشه که از هر مشتری دیگه ای میشه با بیعتنائی دوستانه هر کی اومده اینجا همین طور بوده کرایشون رو میدن و ما هم کلید اتاقشون رو میدیم و همین از احساساتشون حرف نمیزنن یه نکته ای که اینجا وجود داره و دوستشم من بگم اینه که به نظر میاد دختره یعنی مارتا فهمیده جان برادرش البته بعدن میگه نمیدونستم ولی به نظرم حرفاش اصلا تصادفی نیست به شدت هم جلوی سمیمی شدن مادرش با پسره رو میگیره و خودش هم که اصلا روی خوشی به پسره نشون نمیده به نظر شما عجیب نیست؟ برگردی به نمایشتن مادر که انگار پیش جان خجالت کشیده باشه میگه مارتا بس کن جان متفکرانه از مارتا میپرسه در زیاد اینجا میمونه مارتا میگه بعضیاشون خیلی ما هم هر خدمتی لازم بود بهشون کردیم تا بمونن بعضیشون هم زیاد پول نداشتن و زود رفتن جان میگه نه پول زیادی داره و دلش میخواد مدت زیادی بمونه حتی پیشنهاد میده که پولش رو پیش پیش پرداخت کنه اما مادر رد میکنه مارتا میگه خوبه که پول دارید ولی لطفا دیگه از احساساتتون حرف نزنیم داشتم کم کم فکر کردم رو بخوام رفتار و حرفاتون منو خیلی اذیت میکنه. اما اینم کلید اتاقتون. تشریفه برید و استراحت کنید. ولی یادتون باشه ما اینجا خدماتی برای احساسات آدم ها نداریم. ما سالهای تیره زیادی رو گذروندیم و دیگه دل و دماقی برای همدلی نمونده. کلیدتون رو بگیرید و یادتون باشه ما فقط به خاطر منافع خودمون از شما پذیرایی می‌کنیم. خدماتی هم که به مشتری ها میدیم هیچ ربطی به احساساتمون نداره. جان کلیت رو میگیره و مارتا بیرون میره. با نگاهش بیرون رفتن مارتا رو دنبال میکنه. مادر از جان مذرک میخواد و میگه مارتا رو جدی نگیره. وقتی هم میخواد از جاش بلند بشه جان کمکش میکنه. مادر میگه زحمت نکش پسرم خودم میتونم. ببین دستای من هنوز اونقدر قویه که میتونه پاهای مرد رو بلند کنه. متوجه میشه که ژان به کلید توی دستش خیره شده میپرسه حرفایی من شما رو به فکر فرو برد ژان به خودش میاد میگه نه نه معذرت میخوام اصلا متوجه نشدم چی گفتید؟ خیلی مهمه اصلا متوجه نشده چی گفته ولی چرا به من گفتید پسرم؟ مادر میگه او قاطی کردم اصلا ربطش ندید به احساس نزدیکی و سمیمیت. میاد عادتمه جان سری تکون میده و میگه میخواد بره تو اتاقش اما تکون نمیخوره و به مادر خیره میشه انگار که میخواد یه حرفی بزنه مادر میپرسه چیزی میخواستین بگین جان یکم منمن میکنه اما بالاخره میگه نه خانم ولی از استقبال گرمتون متشکرم و از اتاق خارج میشه مادر حالا که تنهاست دوباره میشینه دستاش رو روی میز میذاره و با دقت بهشون خیره میشه. با خودش فکر میکنه چرا راجع به دستان بهش گفتم. ولی خب اگه بهشون نگاه میکرد شاید معنی حرفای مارتارو رو میفهمید و میزاش میرفت. ولی نفهمید. پس دلش میخواد بمیره. ولی من دلم میخواد بذارم بره. دلم میخواد فرار کنه. تا لاقل امشب رو بتونم دراز بکشم و بخوابم. دیگه پیرتر از اونم که بتونم وزنش رو تا رودخونه تحمل کنم. دیگه زورم نمیرسه پرتش کنم توی آب. حتی زور اینو ندارم که آبی که از افتادن جسدش توی رودخونه میپاشه روی صورتم رو پاک کنم. دیگه خیلی پیر شده. بعد انگار به خودش میاد و این افکار رو از خودش دور میکنه. خب دیگه ولش کنم. طرف یه تومه درست حسابیه. بعد اون خوابی که آرزوی قدمر مارتا با عجله وارد میشه و به مادرش میتوپه. هنوز تو فکر و خیالی؟ به چی فکر می کنی؟ میدونی که خیلی کار داریم. مادر میگه به اون مرد فکر می کردم. یا بهتره بگم به خودم فکر میکردم مارتا میگه بهتر مادرش به فکر فردا باشه و افکار مثبت داشته باشه. مادر میگه اینا حرفای پدرته مارتا. مثبت باش. ولی پدرت وقتی این حرفو میزد که میخواد ترسش از پلیس رو از دلش بیرون کنه ولی تو تو فقط این حرف رو میزنی که اون یه ذره صداقت و انسانیت منو از بین ببری مارتا میگه اون چیزی که اسمش رو گذاشتی انسانیت فقط میل به خوابیدنه این خستگی رو تو فردا بذار کنار بعدش دیگه میتونی بیخیال بشی و هر کاری دلت خواست بکنی انگار مادر فقط خسته نیست بلکه نسبت به این مسافره جدید یه حسی هم داره. به مارتا میگه این مسافره با های دیگه فرق داره. مارتا میگه آره زیادی حواز پرته. زیادی قیافه آدم های رو به خودش میگیره. فکرش رو بکن دنیا چطور جایی میشه اگه همه محکوم ها با جلاداشون درد و دل کنن. نه این اصلا درست نیست. تازه حرفای بیربت و فضولیاش عصبی میکنه. میخوام زودتر تمومش کنن. مادر میگه دقیقا همین جایی کاره که ایپ داره. دفعهای قبل نه نسبت بهشون رحم و شفقتی داشتیم نه عصبانیتی. ولی حالا من خستم و تو عصبی. به نظرم درست نیست سه به خرج بدیم و به خاطر یه خورده پول همه چیز رو نادیده بگیریم. مشخصه که دلش نمیخواد جان رو بکشن. مارتا میگه به خاطر یه خورده پول این کارو نمیکنیم به خاطر فراموش کردن این مملکت و به خاطر خونه کنار دریاست تو از زندگی خسته شدی منم اینجا مدام داره بهم به فشار میاد فکر می کنم دیگه طاقت ندارم حتی یه ماه دیگه توی اینجای نکبتی زندگی کنم این مسافرخونه هر دومون سرده کرده اما من هنوزم ته دلم یه ذره از آرزوهای بیست سالگیم رو نگه داشتم برای همینم که شده باید یه چند قدم دیگه برداریم و کارو تموم کنیم تو باید توی این کار به من کمک کنی تو این بچه رو جایی پس انداختی که پر از خاکستر و رو دوده مادر که از حرفای تند مارتا ناراحت شده میگه کاش تو هم مثل برادرت فراموشم کرده بودی بهتر از این بود که اینطوری توی روی من وایسی. مارتا مذرت خواهی میکنه مادرم از این فرصت استفاده میکنه و حرف دلش رو میزنه مارتا میخوام چیزی رو که قبلا میخواستم بهت بگم و نتونستم الان بگم امشب نه یه امشب رو بذار به حال خودش باشه خدا رو چه دیدی؟ شاید اون اسباب نجات ما باشه اما مارتا به شدت مخالفت میکنه و میگه اونا به همچین نجاتی احتیاج ندارن نجات اونا توی دست خودشونه و قطعا باید امشب دست به کار بشن یا امشب یا هیچ وقت کم کم داره غروب میکنه و جان از پنجره به بیرون نگاه میکنه غرق در فکره در فکر ماریا همسرش و اینکه چقدر در مورد دلگیر و غم زده بودن این کشور درست میگفته. اما سعی میکنه این افکار منفی رو از ذهنش بیرون کنه تقی به در کوبیده میشه و بعد مارتا میاد داخل میگه امیدوارم مزاحمتون نشده باشم آقا. میخواستم حوله ها رو عوض کنم و یه پارچه آب خونک براتون آوردم. ژان سر تکون میده و با شیطنت میگه بفرمایید ولی جرت نمی‌کنم بگم اصلا هم مزاحم نیستید. آخه نمیدونم این تو قول قرارمون میگوجه یا نه. مارتا که از این طنه خوشش نیمده میگه می‌بینید جواب دادنتون اصلا شبیه بقیه آدم ها نیست. ژان لبخند میزنه. و با حالتی عذرخواهانه میگه سعی میکنه خودش رو عادت بده اما مارتا که مشغول کار شده با قاطعیت میگه که ژان خیلی زود از این مهمونخونه میره ژان روش رو برمیگردونه و دوباره از پنجره به بیرون خیره میشه مارتا چند لحظه با دقت ورندازش میکنه بعد دوباره مشغول کار کردن میشه از جان به خاطر اینکه اتاق خیلی راحت نیست عصر میکنه و به یه سری از مشکلات اتاق اشاره میکنه مثلا اینکه قبلا اتاق شیراب نداشته یا چراقی بالای تخت نبوده و این برای کسایی که شبها توی تخت کتاب میخونن سخت بوده جان که شگفت زده شده میگه الان رقم توافقمون اجازه بدید بگم شما خیلی آدم استثنایی هستید هیچ مسافر خونه داری به این سراحت به نواقص مسافرخونش اعتراف نمیکنه دیگه دارم مطمئن میشم شما میخواهید قانعم کنید از اینجا برم مارتا میگه که نه اینطور نیست ولی اون و مادرش قبل از پذیرفتن جان خیلی فکر کردن جان سر میده و میگه بله دست کم متوجه شدم خود شما هم خیلی اصرار ندارید من بمونم ولی نمیفهمم چرا من میتونم کرایم رو بدم و فکر هم نمیکنم آدم مشکوکی به نظر بیام مارتا میگه مشکل اصلا شخص جان نیست اونا تصمیم دارن کلا مهمون خونه رو تعطیل کنن جان میگه من نمیخوام باری روی دوش شما باشم ولی برام راحت تر یکی دو روزی بمونم یه سری کارا رو باید راستوریس کنم مارتا میگه پس میخیید برگردید به کشوری که ازش اومدید حتما کشور قشنگیه نه وقتی حرف رفتن به با آفریقا باشه مارتا نمیتونه دلیل خودش رو بگیره اینو ما میدونیم جان میگه بله کشور قشنگیه بعضی از ساحل ها خالی از سکنه است سر صبح تنها چیزی که روی ماساها دیده میشه ردپای مرغای دریاییه این ردپاها اونجا تنها نشونه حیات هستن مارتا که نرم شده با لحنی متفاوت از لحن خوشگه همیشه گیش میگه خیلی بهش فکر میکنم بعضی مسافره ازش برام تعریف میکنن هرچی هم که گیرم اومده راجع بهش خوندن. خیلی وقتا به دریا و گلای اونجا فکر میکنم و وقتی غرق این خیال میشم دیگه هیچی دروبرم نمیبینم ژان با محبت بهش نگاه میکنه و باهاش همراه میشه دست گذاشته روی تنها نخط زف مارتا درک میکنم بهار اونجا واقعا نفسگیره تا، هزار تا روی دیوارا باز میشن و اگه یه ساعت روی های اطراف خونه من قدم بزنی، لباست عطر گلای زرد به خودش میگیره. اینا رو جان میگه. بعد هر دو میشینن روی صندلی و مارتا میگه خیلی معرک است. چیزی که اینجا بهش میگن بهار، یه دونه گل سرخه و چند تا شکوفه که تصادفا توی حیات کلیسا باز میشن. ولی همینم مردم اینجا رو به هیجان میاره. اگه یه ذره عمیق نفس بکشن عطرش خفه‌شون میکنه. لیاقتشون همین بهاره. جان با دقت به مارتا نگاه میکنه. مارتا که متوجه نگاه خیره و کنجکابانه جان شده یک دفعه بلند میشه و دوباره تو قالب شخصیت سنگی همیشگیش فرو میره. از جان میپرسه چرا اینطوری نگاه میکنین؟ جان میگه معذرت میخوام ولی چون قرارمون رو زیر پا گذاشتیم باید بهتون بگم برام عجیب بود که از وقتی شما رو دیدم این اولین بار بود که با یه لحن انسانی با هم حرف زدید. مارتا با خوشونت میگه اشتباهتون همین جاست. حتی اگه حرفتون درست باشه، دلیل نداره باعث خوشحالیتون باشه. بخش انسانی من بهترین بخش وجودم نیست. تنها چیز انسانی که در من وجود داره، میل به اینه که به هر چی میخوام برسم و برای رسیدن بهشون حاضرم هر چیزی که سر راه رو خرد و نابود کنم. ژان بدون اینکه ناراحت بشه لبخند میزنه و میگه دلیلی هم نداره این خوشونت الان مارتا نگرانش کنه چون به هر حال اون که مانینگ سر راه مارتا نیست مارتا میگه بله دلیلی نداره شما بخواستهای من مخالف باشین اما دلیلی هم نداره به بهم کمک کنین جان میپرسه از کجا میدونین دلیلی برای کمک به شما ندارم مارتا خیلی خشک میگه عقلش اینو میگه و اصلا هم دلش نمیخواد کسی رو شریک نقشه هاش کنه. ژان حدس میزنه که دارن برمیگردن سر خونه ای اول. همون توافقی که با هم کرده بودن. مارتا به سمت در میره و بعد میگه: بله، درسته. اشتباه بزرگی بود که توافقمون رو زیر پا گذاشتیم. ولی باید بگم خیلی هم بیخودی نبوده. یه میل و خواسته های رو در من بیدار کرد و اگر قصدتون موندن تو مسافرخونه ماست باید بگم بهش رسیدید. من دیگه تصمیمم رو گرفته بودم که عذر شما رو بخوام اما عشق و علاقه ای من به دریا و کشوری که پر از آفتابه دست بالا رو پیدا کرد و منم دلم میخواد شما اینجا بمونید. ژان آهسته میگه حرف زدنتون عجیبه کلمات عجیبی رو به کار میبرید واقعا عجیبه. اینجا به نظرم همه چیز عجیب و غریبه. صحبتها، آدما، این خونه. مارتا که توی درگاه ایستاده جواب میده شاید دلیلش اینه که رفتار خود شما تو این خونه خیلی عجیبه بعد هم در و محکم به هم میکوبه و میره ژان که به در و مسیر رفتن مارتا خیره شده حسابی دو دله روی تخت میشینه و با خودش فکر میکنه حرفها و کارای این دختره منو به فکر میندازه که بذارم برم برم ماریا رو پیداش کنم و دوباره با هم خوشبخت شیم چیکار دارم میکنم اینجا اما بعد دوباره به فکر وظایفش در قبال مادر و خواهرش میافته و میگه ولی اونا مادر و خواهرمن خیلی وقت بود فراموششون کرده بودم. ولی چقدر اینجا سرده. هیچی مثل سابق نیست. این اتاق برام مثل همه اتاق مسافرخونه های دیگه قریبه است. باز اون زخم کهنه داره سر باز میکنه. اون زخمی که زغزغ میکنه و خوب شدنی هم نیست. من این زخم خوب میشناسم. ترس از تنهاییه. رسیدن به این نتیجه که جوابی برای وجود نداره. ولی چطور میشه انتظار داشت توی همچین اتاقی یا همچین سافر ای به این جوابو برسی به طرف زنگ احزار خدمتکار میره از اون زنگایی که زمانان قدیم وقتی هنوز تلفن رایج نبوده میذاشتن توی اتاق مسافرخونه ها و هتل ها تا اگر مثلا مسافر را به چیزی احتیاج داشتن اون زنگ رو بزنن تا خدمتکار بیاد زنگ رو میزنه صدای نمیاد اما بعد از چند لحظه خدمتکار جلوی در حاضر میشه. راجع کنی که زنگو میزنه ولی صدایی در نمیاد اما بعدش خدمتکاره میاد ژان معذرت میخواد و میگه فقط میخواسته ببینه زنگ کار میکنه یا نه اس پیرمرد مطلقا صدایی در نمیاد چند لحظه ژان رو نگاه میکنه بعد هم در رو میبند و میره بعد از چند لحظه مارتا با یه سینی وارد میشه سینی رو میذاره روی میز و میگه بفرمایید چاییه که خواسته بودید ژان که تعجب کرده میگه اینکه چیزی نخواسته بودم. مارتا میگه پس حتما سوء تفاهم شده و خدمتکار اشتباه کرده. به چایی اشاره میکنه و میگه ببرمش. ژان زود میگه نه نه خیلی ممنونم. وقتی مارتا میره ژان فنجان رو بر میداره و با دقت نگاهش میکنه. یه لیوان آبجو ولی پولش رو گرفتن. یه فنجون چای ولی اشتباهی. خدایا. کمکم کنم کلمه ها رو پیدا کنم و این بازی مسخره رو تمومش کنم. <تصفيق> بفرمو، اینم اون زیافتی که میخواستی پسر مصرف و چای رو مینوشه. کسی با شدت در میزنه. ژان در رو باز میکنه و مادر آشفته و پریشان داخل میشه. میگه، معذرت میخوام آقا، دخترم گفت شما یه فنجون چای ازش گرفتید، درسته؟ اونو خوردید؟ جان که یکم تعجب کرده میگه بله ولی چرا نباید میخوردم؟ مادر میگه منذرت میخوام باید سینه رو ببرم ژان لبخند مهربونی میزنه و از اینکه اسباب زحمت شده اصرخاهی میکنه مادر با بیحوسلگی و خستگی میگه نه مسئله نیست بهتر بود که جان که حیرت کرده زود میگه جدن متاسفم دخترتون اصرار داشت که چای رو برای من بذاره من فکر نمی کردم مادر که متوجه شده کار از کار گذشته با ناراحتی میگه منم متاسفم ولی احتیاجی به از نیست فقط یه اشتباه بوده سینی رو بر می داره که بره اما جان صداش می زنه و میگه تصمیم گرفته همین امشب مسافر خونه رو ترک کنه میگه احساس راحتی نمی کنه و میخواد بیشتر از این مزاحم این دوتا خانوم نباشه. مادر که ته دلش میدونه جان دیگه نمیتونه اونجا رو ترک کنه با صدای آهسته میگه قاعدتا این حق شماست. ولی شاید بعد از شام نظرتون عوض جان میگه فکر نمی کنم باشه خانم. ولی دلم هم نمیخواد فکر کنید با ناراحتی میرم. برعکس خیلی هم ممنونم که تا جایی که ممکن بود ازم پذیرایی کردید. تو خونه شما یه جور یه جور احساس محبت کردم اینا رو میگم چون دلم میخواد با احساس خوبی از هم جدا بشیم تقریبا مطمئنم بازم برمیگردم میگردم پیشتون اما فعلا احساس میکنم نباید میومدم اینجا حس میکنم اینجا خونه من نیست و این احساس خوبی نیست مادر کم میده میگه درکتون میکنم آقا این خدا امراهتون باشه گمونم دیگه کاری از دست ما بر نیاد جان دوباره تاکید میکنه که اصلا مشکلی از مادر و مارتا نیست بلکه اون خود ژانه که هنوز خودش رو پیدا نکرده. مادر با ژان همدلی میکنه میگه وقتی کارها خوب پیش نمیرن دیگه کاریش نمیشه کرد. از یه جهاتی هم ناراحتتم که شما میخواید از پیش ما برید. ژان که یکم امیدوار شده میگه، ممنونم که با من همدردی میکنید. حرفهایی که الان زدین خیلی به دلم نشست. اما مادر باز هم جان رو نامید میکنه و میگه این بخشی از شغل ماست که سعی کنیم خوش آینده مشتری آمون باشیم. جان سرتکن میده. بله خب بالاخره من یه منذرت به شما بدهکارم. اگه اجازه بدین دوستانم جبران کنم. بالاخره شما یه هزینه هایی کردین یه تدارکاتی دیدین. اینجاست که جان کم کم به نظر میاد خسته شده، به نظر میاد خسته است و انگار نمیتونه صحبت کنه. مادر با قطعیت میگه اونا اصلا انتظار جبران از جان ندارن و اگر متاسفه، به خاطر تردید و حس بد جانه، نه به خاطر زحمتایی که کشیدن جان حتی نمیتونه درست بیسته. به میز میده و میگه میخوام خاطر بدی از من برای شما بجای نمونه من خونم رو، من خونه شما رو فراموش نمیکنم. یه جورایی دل هستم. امیدوارم دفعه بعد که میام اینجا حال روزم بهتر باشه. مادر بدون اینکه جواب جان رو بده به طرف در میره. اما جان صداش میکنه و میگه دلم میخواست دلم میخواست حداقل یه تشکر از شما بکنم. در زم میخواستم بدونید که من مثل یه مثل مثلا همه مشتری‌ها از اینجا نمیرم. مادر خیلی مختصر میگه خیلی لطف دارید آقا. انگار فقط از روی وظیفه این حرف رو میزنه. و به این همه احساساتی که جان از اعماق قلبش بروز میده هیچ توجهی نشون نمیده این رو میگه و از در بیرون میره جان بیرون رفتن مادر رو نگاه میکنه یه حالتی داره انگار میخواد دنبالش بره اما خستگیش کاملا مشخصه بالاخره وا میده و خودش رو, رو روی تخت رها میکنه خیلی خسته زمزمه میکنه فردا با ماریا برمیگردم و یه راست میگم منم پسرتون خیلی واضحه حق با بود سختی پاهاش رو روی تخت میکشونه من از این شبی که احساس میکنم همه همین از هم خیلی دوره خوشم نمیاد با خودش کمی حرف میزنه اما صداش خیلی نامفهومتر شده بعدش هم قلتی میزنه و خوابش میبره صحنه مدت طولانی تاریکه بعد در باز میشه و مادر و مارتا چراغ در دست وارد میشن پیرمرد خدمتکارشون هم البته دنبالشونه مارتا نور چراغ رو روی جان میندازه و با صدای خفه میگه خوابش برده مادر هم پچ پچ میکنه اما واضحه که عصبانی و ناراضی نه مارتا خوشم نمیاد اینطوری منو میندازی جلو تو داری منو به زور وارد این کار میکنی خوشم نمیاد اینطوری همه ای دامو کنار بذارم مارتا با خونسردی میگه دارم کاری میکنم که همه چیز برات آسون بشه تو سردرگم و پر از دردی دی و وظیفه من کمکت کنم تردیدها رو کنار بذاری و دست به کار بشی حالا ول کن دیگه به فردا فکر کن و زودتر دست به کار شو خودش دست میکنه تو جیب کت جان و کیف پولش رو بر میداره یکی یکی همه جیبهای جان که عمیقا خواه رو خالی میکنه و در حین این کار پاسپورت جان از جیبش میفته میفته میره پشت تخت پیر مرد میره و بدون اینکه زنها متوجه بشن پاسپورت رو بر میداره. بعد هم میزنه مارتا به مادر میگه بجم همه چی حاضره همین الان که آب رودخونه بالا بیاد وقتی صداش رو شنیدیم میایم سراغش اما مادر با کل شقی میگه نه ما همینجا راحتیم و روی سندلی میشینه مارتا با عخ میگه فکر نکن اینطوری میتونی منو منصرف کنی باشه. منتظر بمونیم. مادر با همون لحن کل شقانش میگه آره بزار منتظر بمونیم. منتظر موندن خوبه. آدمو آروم میکنه. باید همه جاده اونو بکشیم ببریم لبه رودخونه. همین الانم هم خستم. خسته سالها. طوری که دیگه رسوب کرده تو خونم این خستگی. توی رگام. بری در طول این مدد اون خوابه. دیگه کاری به این دنیا نداره. اسامی برایش راحته هیچ نگرانی وجود نداره خیلی راحت فقط از یه خوابی میلغزه توی یه خواب دیگه که رویایی توش نیست چیزی که برای همه یه دلکندن پر از وحشته برای اون فقط یه خواب طولانیه مارتا با اعتراض میگه پس باید خوشحال باشیم ها من هیچ دلیلی نداشتم که از این مرد بدم بیاد برای همین الان خوشحالم که حداقل اون از این عذاب معاف میشه به نظرم آب رودخونه داره بالا میاد خیلی زود همه چی تموم میشه مادر؟ میگه آره همه چی تموم میشه تو این مدت اون از هرچی که میگذره بیخبره دیگه لازم نیست به خودش یا ذهنش فشار بیاره که تصمیم بگیره یا کاری رو زود تموم کنه دیگه لازم نیست خودش رو برای این مقابله با چیزی آماده کنه خودش رو به آب و آتیش بزنه یا از خودش توقع کاری رو داشته باشه که از عهتش بر نمیاد اون خوابه و به هیچی فکر نمیکنه ولی من چی؟ من پیر و خستم به این مرد حسودیم میشه دلم میخواست مثل اون بخوابم و توی همون خواب بمیرم یه لحظه دیگه صدای آب رودخونه میاد فقط یه لحظه دیگه و تا اون لحظه میشه خوشبخت بود مارتا با قاطعیت میگه خوشبختی بعدش ممکن میشه نه تا اون موقع مادر بیتوجه به حرفهای مارتا میگه میدونستی هم شب تصمیم گرفته بود؟ بره؟ مارتا میگه نمیدونسته اما اگرم میدونسته براش مهم نبوده بعد میپرسه پس اومدی دیدیش مادر میگه آره اومدم نظرم اون چای رو بخوره ولی دیگه کار از کار گذشته بود مارتا میگه اگه خیلی دلت میخواد راجع به این مسئله حرف بزنیم باید بگم اون بود که من منو جذب کرد من اول دو دل بودم اما اون شروع کرد از جای حرف زد که من میدیدم. و خوبم بلد بود حرف بزنه اینطوری سلاحی که لازم داشتم رو دستم داد معصومیت اینطوری جزاش رو میبینه مادر میگه ولی گمونم آخرش فهمیده بوده همش میگفت احساس نمیکنه اینجا خونشه مارتا با بیقراری میگه خب اینجا واقعا هم خونه اون نبود اینجا خونه هیچ کس نیست و ما هم دیگه لازم نبود بهش یاد بدیم اون اتاق مال خوابیدنه و این دنیا مال مردن کن. آب داره بالا میاد بجم مادر بجم به خاطر اون خدایی که بعضی وقت دست به دامنش میشی بیا تمومش کنیم مادر به طرف تخت قدم بر میداره و میگه باشه ولی گمونم دیگه صبح سر نمیزنیم مادر مارتا و خدمتکار توی لابی مسافرخونه هستن اتاق روشن و پر از نور صبحگاهیه پیرمرد داره نظافت میکنه و مارتا پشت پیشخان ایستاده و داره موهاش رو پشت سرش جمع میکنه به مادر میگه میبینی بالاخره این صبح سر زد مادر که به نظر نمیاد حالش از دیروز بهتر شده باشه آهی میکشه و میگه آره بالاخره فردا میفهمم چقدر خوبه که همه چی تموم شده ولی الان فقط خستم مارتا خیلی سرخال و شادابه و یه بند حرف میزنه. بعد سالها انگار این اولین روزیه که دارم نفس میکشم انگار از همین الان صدای موجای دریا رو میشنوم مادر برای مارتا خوشحاله اما پیرتر و خسته تر از اونه که بتونه خودش هم شریک این خوشحالی باشه مارتا میگه اینقدر قصه نخور و دلت به حال خودت نسوزه بذار منم با خیال راحت خوشحالیم رو بکنم دوباره همون دختر جوونی شدم که بودم باز تنم گر گرفته فقط میخوام بدوهم مادر هنوزم خوشگلم مادر اصلا مثل مارتا خوشحال و سبک نیست خیلی سنگینه خسته و غمزده است به مارتا نگاه میکنه و میگه آره امروز صبح خوشگلی جنایت خوشگله اما مارتا با بیخیالی میگه الان دیگه جنایت چه اهمیتی داره من دوباره متولد شدم میخوام برم مزه خوشبختی رو بچشم مادر میخواد بره استراحت کنه و یکم با خودش تنها باشه اما پیرمرد خدمتکار از پله ها میاد پایین و میره پیشه مارتا پاسپورت جان رو به دستش میده و بعد بدون هیچ حرفی بیرون میره، مارتا پاسپورت رو باز میکنه و میخونه، اما هیچ عکس عملی نشون نمیده پاسپورت رو به سمت مادر دراز میکنه، صداش آروم و خونسرده و میگه پاسپورت اونه، بخونش حتما اسمش رو میشناسی مادر پاسپورت رو میگیره و باز میکنه برای مدتی طولانی به صفحه خیره میشه اینگه میدونستم میدونستم یه روز این اتفاق میفته باید بس میکردی مارتا پیشخان رو دور میزنه تا بیاد کنار مادرش اما مادر اونو کنار میزنه دست از سرم بردار مارتا من زیادی عمر کردم من از پسرم بیشتر عمر کردم من کشتمش حالا میتونم برم ته رودخونه و پیش آرون بگیرم. مارتا که یکم ترسیده میگه مادر تو که نمیخوای منو تنها بذاری. مادر میگه متاسفم که باید بذارم تو برم. اگر فایده یا معنایی داشته باشه، باید بگم تو دختر خیلی خوبی بودی. همیشه حرمت منو نگه داشتی. ولی من دیگه پیر و فرسوده شدم. دیگه جون اینو ندارم که با همچین غمی کنار بیام. به هر حال مادری که حتی پسرش رو نشناسه دیگه کارش تو این دنیا تمومه. مارتا میگه نه، اگه هنوز بتونه دخترش رو خوشبخت کنه کارش تموم نشده. نمیفهمم چی میخوای بگی. مگه خودت بهم به یاد ندادی به هیچی اهمیت ندم هیچی برام مهم نباشه. مادر میگه بله، ولی من اشتباه میکردم. تو این دنیایی که از هیچی نمیشه مطمئن بود، بعضی چیزا هنوز قطعیان هن. امروز اون چیز برای من عشق مادر به پسرشه. مارتا میپرسه و عشق مادر به دخترش جز اون چیزای قطعی نیست؟ مادر میگه مارتا نمیخوام برنجونمت ولی حقیقتش این دوتا یکی نیستن اونش عشق قویتره من چطور تونستم از عشق پسرم بگذرم؟ مارتا با خشم میگه عجب عشق معرکهی که 20 سال آزگار فراموشتون کرده بود مادر میگه آره عشق معرکهی که 20 سال تو سکوت دووم آورد تا چه فرقی میکنه؟ اینش خودش به قدر کافی معرکه است چون من بدون اون نمیتونم زندگی کنم و از جا بلند میشه مارتا میگه نه تو حق نداری اینطوری حرف بزنی و حتی یه ذره هم به فکر دخترت نباشی مادر میگه من دیگه به فکر هیچی نیستم مارتا این مکافات منه فکر میکنم همه قاتلا یه روزی به اینجا میرسن پوک تو خالی بدون هیچ آینده ای من آزادیم رو از دست دادم جهنم از اینجاست که شروع میشه مارتا با عصبانیت میگه قبلا از این حرفا نمیزدی تو سالها با من بودی و قرص و محکم دست و پای اونایی که قرار بود بمیرن میگرفتی اون وقت از آزادی و جهنم حرف نمیزدی چطور ممکنه پسرت همه اینا رو عوض کرده باشه؟ مادر جواب میده اگه کارم رو میکردم از سر عادت بود. یه ذره قم و قصه کافی بود که همه چیز رو عوض کنه و پسرم این کارو کرد میدونم منطقی نیست مارتا میدونم برای قاتل برای یه آدم کش قم چه معنایی میتونه داشته باشه این قم و غصه یه واقعی مادر برای مرگ فرزندش نیست این فقط عذاب زنده شدن دوباره یه عشقه عشقی که زنده میشه ولی در این حال داره دور میشه و آدم باید شاهد رفتنش باشه ولی من میتونم شهادت بدم که این دنیا هم جای معقولی نیست اینو من میتونم بگم که مزه همه چیزو ششیدم از به دنیا آوردن تا نابود کردن با قدمهایی مسمم به سمت در میره اما مارتا جلوش میسته نه مادر تو منو تنها نمیذاری یادت باشه این من بودم که پیشت موندم و این اون بود که ترکت کرد باید تاوانش رو میدادی همه اینا باید به حساب بیاد کسی که تو باید برگردی پیشش منم نه اون مادر میگه درست مارتا ولی من اونو کشتم مارتا میگه هرچی زندگی میتونست به یه آدم بده به اون داده بود از اینجا رفت و جاهای دیگر رو دید دریا رو دید آزاد زندگی کرد من چی من موندم اینجا دفن شده تو قلب این اروپا یخ زده کوفتی که هر چی بزرگتر شدن بیشتر لهم کرد تو خودت حتی یه بارم منو نبوسیدی باور کن مادر من باید تاوان همه اینا رو بگیرم و تو حق نداری فقط به بهانه یه مرد مرده این لحظه رو که من دارم به همه چیز میرسم ازم بگیری خواهش میکنم اینو درک کن که مرگ برای کسی که زندگیش رو کرده چیز مهمی نیست اون دیگه همه چیز چیزو تجربه کرده بود ولی من خیلی چیزا هست که باید تجربه کنم و تو میخوای منو از همهشون محروم کنی یعنی بازم قرار برادرم همه چیزایی که مال منه رو از دستم در بیاره، یعنی قرار آخرش اشق و محبت مادرم رو هم از من بگیره و با خودش ببره تا اون رودخونه یخ زده مادر، من چیزای خیلی زیادی نمیخوام یه حرفایی بود که هیچ وقت نتونستم بزنم ولی الان میگم به نظرم این محبته که میتونیم کنار هم باشیم و بتونیم هر روز با هم شروع کنیم. مادر به طرف مارتا میاد و بدون اینکه به احساسات امیر مارتا توجهی کنه یا جوابی بده، میپرسه تو اونو شناخته بودی مارتا مارتا یهو سرش رو بالا میاره و میگه نه نه من اونو نشناخته بودم اما اگه شناخته بودم هم فرقی نمیکرد. حالا میدونم که فرقی نمیکرد. مادر میگه دلش نمیخواد این حرف رو باور کنه چون حتی سنگ دل ترین قاتل ها هم یه حدی رو میدارن مارتا میگه آره منم اون حد رو میشناسم اما اون حد مربوط به برادرهای غریبه و نمیشه من حاضر نبودم جلوی اون به زانو بیفتم مادر میپرسه پس جلوی کی قرار بود به زانو بیفتی؟ مارتا زانو میزنه میگه جلوی تو بعد مادر یه سکوت طولانی میکنه و بعدش آهسته میگه دیگه خیلی دیر شده مارتا اصلا یادت میاد آخرین بار کی بقلت کردم؟ مارتا یادش نمیاد اینو به مادرش میگه مادرش ادامه میده که حق دارید خیلی وقت بقلت نکردم چون اصلا یادم رفته بود بقلم رو برات باز کنم خیلی آروم مارتا رو کنار میزنه و ادامه میده ولی همیشه دوستت داشتم حالا که دلم به حرف اومده میفهمم زندگی درست وقتی برام از داره شروع میشه که من دیگه طاقت زندگی کردن ندارم مارتا که صورتش رو با دستاش بوشونده خیلی غم زده ناله میکنه ولی آخه چی میتونه قوی تر از دخترت باشه؟ مادر میگه شاید خستگی و عتش آرامش بعد از گفتن این جمله کوتاه میره و مارتا هم جلوش رو نمیگیره مارتا به طرف در میده و محکم اونو به هم میکوبه به در تکیه میده و فریاد میزنه نه من چه وزیفهی داشتم مراقب برادرم باشم حالا تو خونه خودم تو کشور خودم یه تبعیدیم حتی مادرم رو هم از دست دادم ولی این در برابر معصومیت من بی انصافیه بی حالا اون اونجا آروم گرفته و به هرچی میخواد رسیده ولی من تنها شدم تنها و دور از دریایی که اونقدر دلم براش پر میکشید، آخ، آخ ازش متنفرم. حالا باید تا ابد توی این تله بمونم. دوروبرم پر از کوهایی که جلوی نسیم و دریا رو گیرن و صدای دریا رو خفه می‌کنن. من دیگه هیچ وقت به اون چیزی که حقم بود نمیرسم. من از چیزی که عاشقشم خیلی دورم و این دوری علاجی نداره. خونه من شده این لونه دلگیر و برای رفع تشنگیم هیچی به جز خونهایی که ریختم ندارم. این به که آدم برای جلب محبت مادرش باید بده. حالا که دوسم نداره بذار اونم منو تنها بذاره با این همه خشم و نفرتی که دارم. چون دیگه سرم رو نمیارم بالا با آسمون نگاه کنم. اینجا هر طرف چشم به گردونی نگاهت به دیوار میرسه. اینجا رو اصلا برای این خلق کردن که همیشه سرت رو به آسمون بگیری و دنبال نگاه رحمت باشی ولی من من که هیچ کس حقم رو بهم به نداده زانو نمیزنم و التماس نمی کنم حالا که از جا و مکانم محروم شدم حالا که مادرم رو هم از دست دادم تنهای تنها وسط جنایت از این دنیا میرم قریبه بدون اینکه بخوام آشتی کنم کسی در میزنه و بعد ماریا وارد میشه مارتا که خودش رو جمع و جور کرده میگه دیگه مشتری قبول نمیکنیم اما ماریا میگه مشتری نیست و اومده شوهرش رو ببینه که قرار بود صبح بیاد پیشش اما نیومد مارتا که زل زده به ماریا خیلی بی‌احساس میگه به من گفت زنش توی کشور دیگه است به هر حال غمون نکنم بتونیم ببینینش شوهرتون دیگه اینجا نیست ماریا اخم میکنه میگه این دیگه چه حرفیه مگه توی سافر خونه شما اتاق نگرفته بود. مارتا میگه که ژان دیشب اتاق رو تخلیه کرده. ماریا که مشکوک شده میگه باور نمیکنم اون باید همینجا جا باشه ولی رفتار شما داره منو نگران میکنه. راستش رو بگید لطفا. مارتا دوباره همون حرفا رو تکرار میکنه. ماریا میگه نمیتونست بدون من بذاره بره. ببینید من از دیروز تا حالا تو این کشور عجیب و غریب خیلی بهم به سخت گذشته. ولی دیگه صبرم سر اومده. دلم شور میزد و. حالام تا شوهرم رو نبینم و ندونم کجاست از اینجا نمیرم مارتا میگه این حرفا ربتی به اون نداره اما ماریا با شور میگه همون که به من مربوطه به شما هم مربوطه نمیدونم شوهرم راضی اینو به شما بگم یا نه ولی من مجبورم بگم چون از این بیخبری خسته شدم اون مردی که دیروز اومد مسافرخونه شما همون برادریه که سالها ازش بیخبر بودین مارتا میگه حرف ای نزدین ماریا با عصبانیت میگه خب پس بگین چه اتفاقی افتاده چرا برادرتون تو مسافرخونه نیست و شما و مادرتون اونو نشناخته بودین از برگشتنش خوشحال نبودین؟ مارتا زول میزنه به ماریا شوهر شما دیگه اینجا نیست چون مرده ماریا ماتش میبره چند لحظه با بحت به مارتا خیره میشه بعد لبخند میزنه و تکون میده در حالی که به طرف مارتا میره با لبخند میگه جان همیشه بهم به میگفت شما از بچگی دوست داشتید سر به سر بقیه بذارید ما دیگه خواهر هم به حساب میای مارتا به شدت خودش رو عقب میکشه و میگه به من دست نزن ما هیچ ای با هم نداریم شوهر شما هم دیشب مرد شوخی هم نمیکنم فکر نمیکنم اینجا کاری داشته باشی ماریا با ناباوری میگه دیوونه شدی دیوونه شدی تو آره اینطوری که نمیشه ممکن نیست باورم نمیشه بذاری جسدش رو ببینم، شاید اون وقت باورم شد مارتا بی تفاوت میگه نمیشه، تهه رودخونه است دیشب وقتی خواب بود من و مادرم بردیم انداختیمش تو رودخونه ما، من و مادرم بودیم که اونو کشتیم ماریا عقب عقب میره میگه نه، نه، این منم که دیوونه شدم میدونستم اینجا نباید منتظر خبرای خوش باشم اما دیگه نمیدونستم اینجا دیوونه خونه است مارتا میگه که نمیخواد ماریا رو قانع کنه فقط داره بهش خبر میده اینکه قبول کنه یا نه دیگه با خودشه ماریا میگه آخه چرا آخه چرا این کارو کردید مارتا میپرسه به چه حقی از من سوال میکنید ماریا که دیگه از کوره در میره فریاد میزنه به همون حقی که عشقم به من میده همین چیزی که داره تیک تیکام هم میکنه همون چیزی که به دستام قدرت اینو میده که خفت کنم فقط مسئله اینه که نمیتونم اون نمیخوام حرفو باور کنم زنی که دیونه فقط همین جلومو میگیره مارتا میگه من از این زبونی که شما حرف میزنین هیچ چیز سر در نمیارم شادی عشق من این زبونو بلد نیستم روشن تر از اینم نمیتونم بگم ما دیشب شوهرتو کشتیم تا برداریم همون کاری که با بعضی از مشتریای قبلیمونم کرده بودیم ماریا خیلی به زحمت حرف میزنه و میگه قبلش قبلش نفهمیده بود این اون پسر و برادرتونه مارتا شونه بالا میندازه میگه یه سوه تفاهم بود سوه تفاهم من پیش میاد دیگه اگه هیچی هم از این دنیا ندونی میدونی که سوه تفاهم پیش میاد و طبیعی هست ماریا مشتش رو به سینش میکوبه و میگه وای خدا من میدونستم این تظاهر آخر آقابت نداره میدونستم این تظاهر خون به بار میاره از این آسمون چیزی غیر از بدبختی نمیتونست بباره. بدون اینکه به مارتا نگاه کنه ادامه میده میخواست برگرد خونه، میخواست شما رو خوشحال و خوشبخت کنه. ولی نمیدونست چطوری؟ نمیتونست اون حرفایی رو که باید بزنه پیدا کنه. داشت دنبال کلمه های مناسب میگشت که شما زین کشت دینش شما دو تا زن دیوونه نتونستین آدم مرک رو بشناسین. شما نمیدونین چی و کی رو کشین؟ اون قلبش مثل طلا بود. روحش پر از غرور و محبت بود اون میتونست مایه قرورتون باشه همینطور که مایه غرور من بود ولی آخ،, آخ آخ شما دشمنش بودین دشمنش هستین که اینطوری راحت و خون سرد از چیزی که انجام دادین حرف میزنین هرکی جای شما بود میدوید توی خیابون و مثل حیوانای وحشی نهره میکشید مارتا میگه پیشداوری نکنید تا حالا دیگه فکر کنم مادرم به پسرش رسیده. حالا دیگه آب هر برده و له کرده ولی نمیدونم چرا من باید توی خیابونا و مثل حیوانای بهشی نره بکشم راستش حتی از این اشکایی که میریزیدم بدم میاد ماریا با نفرت بهش خیره میشه میگه این اشکا برای اون شادی ریخته میشن که برای همیشه از دست رفته این اشکا برای تو بهتر از قم و قصه خشکیه که چیزی نمونده تمام وجودم وجودمو پر کنه اون وقت با همین دستام خفت میکنم نه یه لحظه تردید میکنم، نه دستام میلرزه. مارتا میگه فکس کردی میترسم؟ برای من اصلا مهم نیست. حالا دیگه نوبت منه که بمیرم. ولی نمیخوام قاطی مادر و برادرم بشم. بذار دلشون به محبتی که دوباره پیدا کردن خوش باشه و تو دل تاریکی همدیگه رو بغل کنه. اونا دیگه با من تو کاری ندارن. اونا برای همیشه به ما پشت کردن. ولی خوشبختانه من هنوز اتاقم رو دارم و میتونم اونجا تنها بمیرم. ماریا با نفرت میگه آره میتونی بمیری ولی من کسی رو که دوست داشتم از دست دادم حالا باید تو این تنهایی وحشتناک با خاطراتی زندگی کنم که شکنجم میدن مارتا آروم به سمت ماریا میره اغراق نکن تو شوهرت رو از دست دادی و منم مادرمو گمونم هم یهر شدیم ولی تو فقط یه بار اونو از دست دادی بعد از اینکه چند سالی با خوشبخت بودی و هیچ وقت دست رد به نزد. اما مادرم دست رد به سینه ای من زد و حالا مرده من دو دفعه از دستش دادم. ماریا میگه اون میخواست ثروتش رو به پای شما بریزه. وقتی تو اتاقش تنها بود و شما داشتین نقش قتلش رو میکشیدین اون داشت به خوشحالی و خوشبختی شما فکر میکرد مارتا میگه من با شوهر تمیر به گیر شدم. منم مثل اون فکر میکردم خونه خودم رو دارم. فکر میکردم جنایت خونه ماست که جنایت ما رو منو رو برای همیشه به هم گره زده. تو این دنیا به کی میتونستم رو بیارم به دوست کسی که پا به پای من آدم کشته بود؟ علی اشتباه میکردم حتی جنایتم از پس تنهایی انسان بر نمیاد واقعیتش اینه که من تنها می‌میرم. همونطور که تنها زندگی کردم و تنها آدم کشتم. ماریا آروم به سمت مارتا میاد اما مارتا خودشو عقب میکشه میگه به من دست نزن. فکر این که دسته ای آدمیزاد بتونه قبل از مرگم گرما به منتقل کنه و فکر این که هر چیزی که نشونه محبت آدمیزاده منو وقت مردنم هم, هم دنبال کنه خونم رو به جوش میاره. ماریا خیلی نزدیک مرتاییی میسه اما هیچ تماسی با هم ندارم زل میزنه تو چشمای مارتا و میگه نه ترس میذارم همونطور که دلت میخواد بمیری تو مادرت برای من هیچ چی جز دوتا شبه شبح که باید تیکه کنم دوتا تا شبح که وسطه تراژدی بی پایایان دیدم نظر نفرت دارم نه دلم برات میسوزه دیگه نه فرصت رنج کشیدن دارم نه مقاومت اتوقی آن کردنبدبختی خیلی بزرگ از من بود و بعد صورتش رو با دستاش میپوشونه مارتا بر میگرد و از ماریا دور میشه اما بعد دوباره به سمتش میچرخه نه خیلی هم بزرگتر نبوده حداقل این اشکار رو برات باقی گذاشته اما فکر کنم هنوز یه کار هست که قبل از مرگم باید انجام بدم و تو رو باید از این امید خلاص کنم نمی‌تونم بمیرم و بذارم توی این خیال بمونی که همه ی حق با تو بوده که عشق بیفایده و بی‌خود نیست و اینا همش یه اتفاق بوده نه در واقع الان همه چی سر جای خودشه تو باید این واقعیت رو قبول کنی این واقعیت که هیچ وقت هیچ کس هیچ کس دیگه‌ای رو واقعاً نمی‌شناسه ماریا که واقعاً گیج و شده متزلزل میگه این حرفا به چه دردم می بس کن دیگه نمیخوام حرفات رو بشنوم قلب من پاره پاره شده فقط به اون کسی فکر میکنم که عاشقش بودم و شما کشتینش مارتا با خشونت میگه خفه شدیگه دیگه دلم نمیخواد راجع به اون یه کلمه دیگه هم بشنوم اون دیگه برای من و تو هیچ چی نیست ابله اون به چیزی که میخواسته رسیده حالا هممون سر جایی هستیم که باید باشیم چرا نمیفهمی که نه برای اون و نه برای ما چه تو زندگی و چه بعد مرگ نه, نه آرامشی. خونه آره واقعیت همینه. اگه میشه گفت زیر اون خاک اون سرما و تاریکی خونه ی جایی که قرار کرمها ها ذره ذره تنمون رو بخورن ماریا با گریه میگه ای خدای من دیگه تحملش رو ندارم تحمل حرف زدنت رو ندارم اونم اگه بود نمیتونست تحمل کنه اون دنبال یه جور خونه ی دیگه اون دنبال وطن بود مارتا دیگه رسیده به در از توی چارچوب میگه برای این حماقتش هم جوابش رو گرفت. تو هم به همین زودیا جواب همانقتیس رو میگیری <تصفح> هممون رودست خوردیم هممون فکر می‌کردیم زندگی یه روحی داره یا چیزی که ما رو به خودش میخونه این همه زاری برای چی برای عشق برای دریا همش چرنده شوهرت جواب رو پیدا کرده ماها یه خونه بیشتر نداریم اون هم همون خونه مخوفیه که آخر سر هممون رو بغل به بقل میچپونن توش تا هم به زودی این جواب رو پیدا می‌کنی وقت با خنده یادت میاد یه روزی فکر میکردی توی تلخترین تبعید هستی که آدم اسمش رو گذاشتن تنهایی. چطوری نمیفهمی؟ قم و قصه تو در برابر بیادالتیی که در حق بشر شده هیچه. و حرف آخر. چون شوهرت رو کشتم این نصیحت رو بهت مدیونم. برو دعا کن خدا تو رو سنگ کنه. این تنها خوشبختی واقعیه. برای همینم خدا این خوشبختی رو برای خودش نگه داشته تا هم مثل اون خودتو در برابر همه این ها و فریاد ها بزن به کری تا فرصت از خودت رو سنگ کن اما اگه جرعتش رو نداری که بری توی آرامش خاموش مخت بیا مهمون خونه پیش خودمون میدونی که توی تختای اینجا چی انتظارت رو میکشه منظورش اینه که برو خودکشی کن یعنی بیا اینجا خودکشی کن و بعد, بعد از گفتن این حرفا مارتا میرو، ماریای مپوت و وحشت زده رو تنها میذاره. ماریا پیچ و تاب میخوره و با فریادهای ناامید و سوزان بارها خدا رو صدا میزنه و ازش کمک میخواد. در باز میشه و پیرمرد خدمتکار وارد میشه. با صدای محکم و واضح میپرسه منو صدا زدین؟ ماریا با گریه میگه او نه ولی کمکم کن. یکی باید کمکم کنه. خواهش میکنم کمک هم کن. خواهش میکنم پیرمرد با همون لحن قاطع و محکم میگه نه چیزی که شنیدید نمایشنامه سوئ تفاهم بود، نمایشنامهی که کاما توش به پوچی جهان پرداخته. همینطور که توی مقدمه هم گفتم در بخش دوم کتاب بیگانه زمانی که مرسو توی زندانه، یتی که روزنامه این نصفونیمه پیدا میکنی که خب خبری که توش نوشته شده ناقصه. اما خبر چیه؟ خبر درباره مردیه که 25 سال پیش رو ول کرده و برای ثروتمن شدن به دیار دیگه رفته. و وقتی ثروتمند و غنی برگشته تصمیم گرفته مادر و خواهرش رو گیر کنه که خب مادر و خواهرشون رو میکشند. چیزی دقیقا مشابه داستان نمایشنامه سوی تفاهم با چند تا تفاوت. اولا که در اون خبر جان هم زن داره هم بچه داره. ولی در نمایشنامه فقط ماریاست در خبر خواهرش هم مثل مادرش خودکشی میکنه، ولی نه مثل نمایشنامه. خودش رو توی چاه میندازه. انگار اون هم پشیمون از کارش. ولی خب توی نمایشنامه هم که شنیدی مارت همچین حسی نداشت. در نهایت آخرین فرق اون خبر و این نمایشنامه اینه که اونجا با چکش مسافر رو میکشن ولی توی نمایشنامه مسمومش میکنن. من واقعا خوندن اون رمان کوتاه رو هم حالا بعد از شنیدن این نمایشنامه یا بعد از دوباره خوندنش بهتون توصیه میکنم. اما یه کتاب دیگه توی حلقه پوچی کامون بوده به نام افسانه سیزیف. که کامو توی اون مقاله میگه تقابل ما با این جهان پوچه چون جهان جوابی برای نیازهای انسان نداره رسیدن به سعادت برای انسان تو این جهان تعریف نشده انسان دوست داره جهان یه معنایی داشته باشه اما جهان هیچ معنا برنامه یا طرح مشخصی نداره این جهان نسبت به سرنوشت تک تک ما و به طور کلی سرنوشت جمعی انسان هیچ اعتناعی نداره اما انسان میخواد جهان بهش اعتناع کنه. دوست داره خودش رو مرکز جهان بدونه. توی سو تفاهم هم مشابه این حرف ها رو از زبون مارتا به ماریا میگه آللبکاممو. اونجا که میگه همه ما رو دست خوردیم که فکر میکردیم زندگی معنا داره یا میگه تو فکر کردی توی تلخترین تبعید بشری هستی و بدترین اتفاقات داره برای تو میافته در حالی که غصی تو در واقع هیچ چی نیست یا مثلا یه جایی میگن که، ماهای خونه بیشتر نداریم اونم مرگه. در زمین کامو از زبون مارتا در برابر این پوچی دو راه جلوی پای انسان میذاره اولی اینکه این پوچی رو بپذیری و به قول مارتا سنگ بشی نسبت به همه چیز بیتنا بشی و اینطوری آرامش برسی یا اگر اونقدر قوی نیستی که این کار بکنی دیگه باید خودکشی کنی خود کامو میگه خودکشی به خاطر پوچی دنیا خیلی نادره چون میل به زیستن ورای تفکر و فلسفه است. باید پذیرفت که زندگی پوچه، جهان ترهین نداره و نباید از خدایان، اگر اصلا وجود داشته باشند، انتظار کمک داشت. اما باید به خود زندگی علی رغم درک نشدنی بودن و بی‌معنا بودنش عشق ورزید و زندگی کرد. بخش از های مذهبی کامورو رو هم میشه در سو تفاهم دید. کامو دقیقا بی خدا حساب نمی یعنی کاملا مطمئن نبود خدا وجود داره همطور که از خیلی چیزهای دیگه مطمئن نبود. ولی سارت درباره اعتقاد مذهبی کامو میگه تو دو دون نوشته های کامو نفرتی از خدا وجود داره که در واقع بهتره بگیم کامو زد خداست تا بی خدا. در صورت تفاهم هم شخصیت پیرمرد که نمادی از خداست در تمام مدت ساکته. هیچ کاری برای جلوگیری از فاجعه نمیکنه و از کمک کردن به ماریا که فریاد کمک سر داده، خودداری میکنه. اون کارش با پاسپورت رو هم یادمون هست. به نظر کامو مذهبین او خودفریبی که جلوی درک ما از پوچی و بی‌معنایی زندگی رو میگیره. خیلی ممنون که پادکست رو شنیدید. امیدوارم در فصل دوم هم مخاطبان و کسایی که پادکست رو دنبال میکنن روز به روز بیشتر بشن. نظر شما چه مثبت چه منفی کمک کننده و سازنده است و امیدوارم اون رو از ما دریق نکنید مراقب خودتون باشید کتاب بخونید فیلم ببینید تا قسمت بعدی این نقش ماند از غلمت یادگار عمر میدنکی است